لهی وعا روی بی عبدالله قسمت همه میدم ما را از خودت و از دینت و از اهل بیت و از روحانیت یچ جدا مگردم من شاید خدا لط کرده باشه غریب سی سفر از نج اومدم کرد بلا. سالی پنجبه می اومدیم. الانم آیون میان اوما مراع طلب ها گذنا و, و ملد از جب بله. سال پنج تو زیارتی مخصوصه داره آقا سید و شهدا، اول رجب و نیمه رجب و نیمه شعبان و عرفب و عربین پنج تو زیارتی مخصوصه ده تا ده تا بیستا بیستا با هم میشن یه قرد نون میدن به این نون و نونوه خوش میکنه توی یکیسه میکنه یه قرد ماست و نعنا قاطی هم میکنن یک کاسم بر میدنن و یه قاشق و یه قرد نمه قبا قباسون هم در میارن تامو کنن میدارن توی کوله پشتیه کول پشتیه هم پشت میگیرن ها میدارن توش یه خورده که از شب میگدارن از تو مدرسه ها و خونه ها میان بیرون میرن تو حرم امیر المقمنی سلامی با آقا مکنن و میگن علی داریم میریم کربلا عمری نداری آقا داریم میریم کنار قبر عبی عبدالله با اینا میان کوفهه و بعضی و از را خشکی میان، را کوه یا یده برره سر و تورا هستن. ایرا سیده برزقه. خیلی برا تو رون ایرا سی بره خیلی علو کنال بارات میا میمدیم سر و تو را بودی او چش بررز خورده کمتر میان چه حال خوشید؟ تو را بحث میکنن هرریث برای هم می خوونن مطال بدیری و را میگن دور همدیگه میشینن و معل اون سیت با اون چه دیی و اون چه معنویعالی یه کوی یه کمبرااتتون بگمونی که دیدم. تو را وقتی آنم میداد یه عرب ها موزیف درست کردم موزیف یعنی مهموخونه تشریفاتی نیکار که حسیر رو هم انداختنه دکیه حسیر هم خواهند کردم مهموخونه شد دوره سال بیکره برین می کاره بریندیشو کنار به بچه هاش نون میداد و خورما تو هوا گرد عبد هندونه آب فراد عبد خورش خورما ها می بگیرم میخورن اینا اون یه نون میخورن یه خورده که دارن میگه صبر کنید این زبار سید الشهدا بیا آقای زباره عبی عبد الله میاد ایدعاء بیست تا آیین اهل علم غیر اهل علم به التماس خدا شاهده میان جلو به اینا اینا رو میبرن اونجا یه لقمه غذا درست میخورن میدن رو اینا بالاستر اینا وای میسن فانوس دست میگیرن چرا برق اینا رو دارن فانوس دست میگیرن ظرف دوغاب دست میگیرن به اینا میدن اما وقتی اینا خوردن هر چه موندا اینا رو برمی‌دارن حتی تو اون جمعیت دورشون هر کدوم یه خورده میدن میگن اینا رو بخورید اینا از باقی موندای زوارای سید الشهدا این چه حسنی است این چه اخلاصی است این چه عقیده‌ای چه ایمانی چه ستای درونی است چه دلیش مشابه حال یه به قابستون شب را میرن. روز میخوابن زیر نخلا نمیشه را برن گرمه اول مغرب شد نماز مغربش همون خوندیم یه نون دوخ خودمون درست کردیم قردیم و رافتیدیم بریم برای که این برای سیارت اربعی سلوک کریم سیارتی ها دو هزار تو موکب میاد و دست از اطراف ایران رو جا اما رسیدن گرملا تو سند دیدن جانی خیلی شده الهی به آبروی امام حسین خود دیه وسیله درست کن حالا دیگه ایران حرم امام حسین به رو مردم باشه مردم برن به زیارت عبی عبدالله برسه